سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون مفهوم واقعی صبر و تجلی آن در تمام شعون زندگی بشر با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام در صبح آشورا نوار شماره نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین از صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و علیه تیبین تاهرین المعسومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام و منک السلام ولك السلام و, السلام و يعود السلام سبحان ربك رب العزت عما يصفون والسلام على السلام المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك يا النبي و رحمت الله و السلام على الائمه الهادين المهديين السلام على جميع انبیاء الله و ورسله وملائكته اجمعین السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على صدیقت الشهيده السلام علی الحسن بالحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی ابن الحسین زین العباد السلام علیه محمد ابن علي باقر علم النبي السلام علیه جعفر ابن محمد النسادق السلام علیه موسی ابن جعفر النكازن السلام علی ابن موسی الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد النهادي السلام على الحسن ابن علي بن زكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم قال عليه السلام صبرا بن الكرام فمل موت الاغن تره تابروا ان البعوس و ذرا ال الجنان الواسع و نعیم دائمه حقیقتا امشب به دو جهت اصلا برای بنده امکان صحبت و حضور در جمع شما نبود یکی به جهت شدت کسالت و خستگی و ناتوانی دومی به جهت شدت رنجی که در این شب برای هر ای مطرح هست، این واقعیتی است. ولی توسل جستم که کمکم کنید، من به اندازه ای که ارز ادب کنم، امشب هم نامم در لیست ذاکرین ابو عبدالله با عنایت خودش ثبت بشه ارز ادبی کنم. لذا میخوام بحث امشبم رو اصلا با این یازده شب گذشته تغییر بدم این اجازه را به میخوام ما در طول سال شبه جمعه بحث داریم با سبک بحث آشنایید امشبم دوازدهمین همین است. که در این ایام به مناسبت عبی عبدالله با هم گرد هم نشستیم و گفت شنود داشتیم یه مقدمه کوتاه اول جمبندی بحثای چند شب گذشته رو راجب صبر میکنم به اون کیفیت استناد به آیات و روایات و تحقیق و فلا نه یه نتیجه گیری مختصر میکنم بعد از مقتل وقایه اصر تا این شب رو میخوام بخونم حالا چقدر بتونم نمیتونم مقتل روز آشورا زیاد خونده میشه به هر حال کم و بیشی خود بندم خدا راشوک چند سالیست که مختصری توفیق دارم مقتل بخوانم ولی مقتب شب یازدهم رو شاید کمتر خونده شده باشه از متن میخونم که بعد از این که عبی عبدالله شهید شد چه کار کردند. حالا من اجازه بدید مقدمه بحثم فقط گفتیم که عبا عبدالله الحسین علیه السلام در روز آشورا این پیام و درسشون را برای ما باقی گذاشتن که اگر میخواید رشد کنید بالا برید تعالی پیدا کنید سبور باشید با اون مقداری که فرصت اجازه داد و عرض کردم معنای صبر را دقت کنید فقط تیم و تبرکن عبارتی از عبید عبدالله را که وقتی از مکه حرکت میکرد به سوی کوفه و کربلا و روز آشورا هم یک بار دیگر این عبارت رو تکرار کرد این رو از کتاب لحوف صفحه 53 و سه و در این رابطه حضرت فرمودن مطلب مفصل قسمتی از فرموده ی حضرت رزالله رزانا رضای ما رضای خداست اونی که خدا میخواد ما میخواییم از مکه داره حرکت میکنه میپرماد اونی که ما میخوایم هم اونی که خدا میخواد ما همونو میخواییم الله رضای اهل البیت ما اهل بیت به اونچه که خدا بخواد راضی هستیم نصب را الا بلائه بر بلاها ابتلاعاتی که خداوند مقدر میکند نصف رو ما صبر میکنیم و یوفینا اجور الصابرین در مقابل این صبری که ما میکنیم خداوند اجر صابرین را مقرر میدارد صبر مراحل مختلفی داشت که بحث کردم اما اجازه بدیدین نتیجه رو امشب بگیرم که یک انسان اگر مسئولیت می فهمد و اگر خود را در پیشگاه خدا به عنوان عبدی می شناسد که رسالت به عهده او میآید در جمیع شئون سه مرحله یا سه مسئولیت یا سه رسالت برای او مطرح می شود که صبر هم با همه اون ارزشی که داشت در این سه مرحله قطعاً مطرح خواهد بود یک وظیفه و رسالت بین خود و خدا دو وظیفه و رسالت بین خود و خانواده سه وظیفه و رسالت بین خود و جامعه گاهی انسان‌ها وظایف بین خود و خدا را خوب انجام میدهم که یکیش صبر دارم عرض می کنم با عنوان سرچشمه و یک عامل ارزنده‌ای که انسان را در انجام وظایف یاری میدهد که بحثش گزش یعنی رابطه بین خود و خدا یعنی آن چه که با عنوان وظیفه الهی در رابطه با حق الله دارد شبوره نمازشو می‌خونم سبور نسبت به حق الله که نماز است روزش رو میگیره صبور نسبت به آنچه که حق اللهه و های <تصفح> اگر کسی در این مرحله توان نداره اولین پله رابطه بین خود و خدا را هنوز درست نکرده قدرت استقامت و صبر و ایستادگی بین خود و پروردگار عالم در او ایجاد نشده او هنوز احکام اولیه را انجام نمیدهد. هنوز وظائف ابتدایی را که خدا برایش معین کرده عامل به اینها نیست آیا به مراحل بالاتر می تواند برسد نه ولی اگر این مرحله را موفق می شود وظیفه بین خود و خانواده دو نمونه عرض می کنم کسی که بین خود و خدا تا به اون مقام رسیده که مثل سعد از اصحاب پیغمبر در جنگ ها جهاد کرده و رشادت ها نشون داده الان در مدینه از دنیا رفته است پیغمبر فرمودند خودم غسلش میدم و کفنش میکنم و دفنش میکنم این مقدار احترام براش قائل شد جنازه سعد آورد توی قبر بگذاره مادر سعد زنده بود نوح سرایی میکرد حنیئا لك الجنه یا سعد پسرم سعد بهشت بر تو گبارا باد زیرا کسی که پیغمبر این گونه برای او عمل میکند این قطعا بهشتی است پیغمبر از تو غبر سر آوردن بالا فرمودن مح یا ام سعد لا تجزمی علا امر ربک مادر سعد ساکت باش اینجوری راجه به کار خدا سری و قاطعانه نظر نده سعد الان گرفتاره چرا یا رسول الله نماز نمیخون چرا روزه نمیگرفت چرا بنده آبدی که اهل جهادی باشد تا حدی که حتی پیغمبر برای غسل و کفن و دفنش بیاد نبود چرا چرا یا رسول الله فرمود در خانه با اعضای خانواده‌اش بد رفتار بود عصبانی بود سعد گرفتاره یعنی صبر در رفتار خانوادگی نداره حالا یک حدیث اینجا براتون از کتاب مکارم الاخلاق بخوانم در این شبهای عزای ابی عبدالله اینا رو در زندگیمون پیاده کنیم انشا الله اگر میخوایم رشد کنیم با اون صبرهای بالا هدفمانه که باید برسیم که این شبها براتون اشاره کردم اما امشب مجمل دارم عرض کنم که از این مقدمات از این عبور کنیم به اون درجات بالا برسیم انایت بفرمایید مکارم الاخلاق حدیث از پیغمبر اسلام من صبرت علا سوء خلق امرعته اعتاهلا من الاجر ما اعتا ایوب و علیه السلام علا بلائه و من صبرت الا سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل سواب آسیه بنت مزاحم اینارو پیاده کنیم در زندگیمون اگر مردی دید همسرش اشتباهی خطایی از او سر میزند صبر کند زود کانون خانوادگی را به مسائل کشمکش و درگیری نیارد با گذشت و اغماز برخورد کند من صبرت روایت رو دقت کنید صبر در این مرحله داشته باشد خداوند اجری به او میدهد که به ایوب علیه السلام در مقابل اون همه بلاها که صبر کرد میدهد یعنی چی؟ من صبرت علی سوء خلقه امرأته اعطا الله من العجر ما اعتا ايوب عليه السلام علا بلائه و من سبرت نقطه مقابلش زنی که ببیند الان شوهرش کوتاهی کرده احيانا مسائلی رو مرتکب شده که نمی باید مرتکب بشه صبر کند در مقابل این صبر او اعطا الله خداوند به او می میکند اجری را که به آسیه زنه فرعون داد تو پرانتز اینا باید باز بشه ببینید ما بعضی وقتا یه جلسه مستمه مطلب رو میشنوه بعضی مثل لا اله الا الله است لا اله رو میشنود الا الله را نشنیده هست. میگن نفع کردن خدا را لذا این بحث های مسلسل شبه جمعه برای همینه بتونیم پی بگیریم یه بحث رو همه ی جوانبش رو بررسی کنیم حالا اگر یک خانمی یا آقایی بگوید صبری که به تحمل ظلم بیانجامد چی؟ فرق داره صبر با تحمل ظلم بحث اینه که مغالطه نکنیم یک زمان واقعا میدان میدان صبره، ولی ما او رو با ظلم خودمون غاتی میکنیم گاهی تحمل ظلم عنوان صبر بشمیدیم یک وظیفه بین خود و خدا با صبر باشیم نسبت به احکام الهی که در انجامش که در اجتناب از مهارمش، باید در شعون خانوادگی یک مقدار صبر و گذشت و ایثار و ایستادگی و اغماز و محبت و و مخصوصا و مخصوصا اینو بیاد داشته باشید من آیه براتون میخونم از خودم نمیگم احسن کما احسن الله و این آیه قرآن داره یاد میده به ما احسان ابتدائی کنید لطف کنید کرم داشته باشید شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ تو را کی مویسر شود این مقام؟ که با دوستانت خلاف است و جنگ کسی که صبر در برابر مسائل خانوادگی خودش را ندارد قاطعانه ارز کنم نسبت به مراحل دیگر دوچار مشکل می شود اون قضیه رو شنیدید معروف آمد به دیدن اون مرد خدا دم در خونش رسید از زنش پرسید کجاست این عالم ربانی؟ گفت شروع که از پوش دادن نسبت به اون مرد خدا تعجب کرد این چرا امسرش اینجوریه اومد از دیگران پرسید گفت الان از راه دور میاد. نگاه کرد دید هیزومی را روی شیری بار کرده. یک اجدهاییم به عنوان تازیانه به دستش داره این شیر پر از بار هیزم رو با این تازیانه میرانه. گفت شما همون مردی هستید من دنبالت میام گفت بله گفت چطور زن اونچنانی در منزل داری گفت صبر در برابر رفتار او قدرت این چنانی را خدا به من انایت میکند. کند عرض کردم یه جلسه بحثه اینا باید شکافته بشه یعنی چه نه یعنی زیر بار ظلم رفتن نه بس اینه که انسانی یه مقدار اهل گذشت باشه یه مقدار تحمل برخی مسائل داشته باشه تا امکان رشد و تعالی براش پیش بیاد مرحله سوم بین خود و جامعه سفری که در رابطه با جامعه مطرحه پر توقع نبودن فقط از یک طرف لطف نخواستن روحیه ایستادگی برای دیگران کار کردن استقامت مثلا دیده شده بعضی وقتا اینجا رو دقت بفرمایید دیده شده بعضی وقتا افرادی که در جامعه برای دیگران کاری میکنن اون که انتظار دارن قدردانی یا مثلا احیانم سپاس و تشکری مطرح نمی شود میگن ول کنید مگه بیکاریم برای مردم کار کنیم این صبر نداره اگر امام حسین روز آشورا می فرماد صبرن بن الکرام این همه این تو چند شب بحث کردیم توجه داشته باشید بنا این بود که جلو کشش نفسانی رو بگیریم نفس ما اگر این کار را برای این کرد که مردم بگن بهبه و چهچه چه این کار که ارزش نداره اما اگر برای خداست در راستای تعالی علی الله چه مردم بگن دست درد نکنه چه نگن دست درد نکنه فرقی نمیکنه باید در برخورده با جامعه این قدرت ایستادگی و صبر را داشته باشیم آقا اگر کارمندی بنده خدایی که به تو مراجعه میکند، صبور باش در حل مسائلش خسته نشو این رنجابر آدم گایی توی اداره، توی یه وزارت ای مشکلی داره میخواد سؤال کنه از یک کارمند که میدانه مال نیست این کار ولی عزیز من انقدر رانمایی از شما میخوام بگو من کجا مراجعه کنم چنان برخوردها تند صبرها کم ایستادگی در انجام وظیفه وجود ندارد که طرف جرأت نمیکنه سوال کنه پس مایی که دم از امام حسین میزنیم و شیعیم و ایام ازای ابی عبدالله میخواییم درس از بگیریم این صبرن بن الكرام فقط در میدان جنگ در مقابل دشمنان استادن صبر میخواد شما چقدر صبر دارید اگه واقعا اینجوری بودی الان تو ادارت پشت میزد نشستی کسی میاد آقا جون من ناشیم وارد نیستم یه مشکل اداری دارم به کی مراجعه کنم به کار خودت لطمه نمیخوره از نظر وظیفه شرعی کاری که میخوای انجام بدی پاشی بگی بیا عزیزم همراه من امراض میام به نشون میدم اول برو تو این اتاق آقا کار این اینه بعد معرفی کن به اون آقا این صبر هست یا نیست این ارزش هست یا نیست آخه ما تصور میکنیم فقط اگر من صبر داشتم ماهی ختم قرآن بخوانم این صبر خوبه ارزش داره نمیگم ارزش نداره ولی وقتی در برابر وظائف خانوادگی هم نیستم در برابر وظائف اجتماعی نشبت به دیگران صبور نیستم مثل یه بدنی که آقا رشدش ناقصه یه بچه از مادر متولد شده سر رشد کرده و اندازه بعد از 15 سال 15 ساله ولی دستپا و بچه شش ماهب و هش ماهب و ساله. این ناقصه ما زمانی میتونیم در راستای کمال معنوی پیش بریم و صبر با اون ارزش را که در دوازده شب بحث کردیم عامل تعالی خودمون بدانیم که در هر مرحله ای که مسئولیت داریم صبور باشیم ایادتون نده هر مرحله‌ای یک مسئولیت بین خود و خدا داریم آقا عبد خداییم حق بلا حق الله حق صبور در حق الله دو نسبت به خانواده صبور نسبت به خانواده به عنوان وظیفه‌ای که گاهی افتلاعات گنابونی در شون خانوادگی پیش میاد که میزان صبر سنجیده بشه سه در رابطه با اجتماع ما مسئولیم در رابطه با بندگان خدا یه مقدار ایستادگی و سر اینی که من میگم اجازه میدید دو تا مثال یه مقدار روشن بزنم بریم سراغ مقتل و امشب دقت بفرمایید. فرض بفرمایید بنده الان سوار اتومبیلم دلم میخواد به سرعت این اتومبیل رو برانم. توی بیابانی که دیگران نیستن، چهار نیست، اتومبیل دیگه نمیاد. خطری که در اثر تند ایجاد میشه بر خودمه. خل خوب اینجا من دارم خودم عذیت میکنم آزارم به دیگران نمیرسه خدا این اجازه رو به من نداده من باید صبور باشم جلو این میلم رو بگیرم به اندازه لازم رانندگی کنم چون خودم رو به تهلکه نندازم به خطر نندازم اما یه وقت تو جمع زندگی میکنم من دلم میخواد اینجوری رانندگی کنم آقا دیگران وقت میشن آبره بیاده داره پیر پیرمرد ماشین دیگه از اون طرف میاد چرا حقوق دیگران رو رعایت نمیکنی؟ سبر در رابطه با دیگران آیا فقط در اینجاست حالا من دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم بیام تو خیابون چه پسرم چه دختر خواهر من برادر من اگر اینجوری لباس پوشیدی اومدی تو خیابون چهار تا جوان رو وادار به زنا کردی چهار تا جوان رو وادار به زنا نکردی دنیای روحش رو مشغول شهوت جنسی کردی ای الان میخواست درس بخونه فردا امتحان بده این شکل لباس پوشیدن تو دنیای روحش رو اونچنان مسترد کرد امشب نتونست درس بخونه فردا نمره نیاورد تو رو به شرف و وجدانت مسئول هستی یا نه تو نتونستی صبر کنی از این لباس پوشیدن بگذری خب او نمیتونه صبر کنه از اونجور رانندگی کردن بگذره خب این خیانت به دیگرانه خب تو هم از اینجور لباس پوشیدن بگذر ما انسانیم صبر که میگیم اینا رو من فرصت نشد که بخوام جزئیات و تیک تیک به بیام جلو دقیق بشین جنبه عملی و کاربردیشو تو زندگی اما خانم دختر خانم اگه به خاطر خدا صبر کردی گفتی من میتونم خودم بزک بذک کنم تضعین کنم به این کیفیت بیام تو خیابون اما چون ممکنه جوان مردم دو انحراف و آلودگی بشود من نسبت به جامعه مسئولم خدایا به خاطر تو صبر میکنم از این علاقه چشم میپوشم خدا چه عجیبت میده سبرم دن الکرام همینجور پسر یه شوخی میتونی بکنی با شوخی یه اده رو به گناه بندازی صبر میکنی جلو زبانتو میگیری جلو یه فیلم میشنی با دیدن این فیلم دنیای روان خودت به هم می ریزه این دنیای روان تو به هم ریخت با دیگران هم به گونه دیگری می شود ما هم شاگرد بودیم هم معلم دیدیم یادمونه معمولا گاهی وقتا یه روزی که معلم سر کلاس میره یه مقداری عصبی خسته میگن چی شده دیشب با خانمش دعوا شده دیشب طلبکار اومده دم در بده کار بوده که مشکلاتی داره اجاره خونه شو نتونسه بده یعنی این مشکلات در کیفیت تدریس معلم تو کلاس داره منعکس میشه ما جوری در جامعه عمل کنیم که بی صبری ما نسبت به این خواهش های درونی جامعه را مسترب کند خب بیایم این ایام این درس از امام حسین بگیریم آقا جون شما از مکه را افتادی فرمودی ما صبر میکنیم اجر صابرین رو میبریم روز آشورام گفتی صبر می‌کنیم صبر اجر صابرین رو میبریم به اون بزرگان و بزرگزاده ها و ارزشمندان فرمودی صبرن بن الکرام می‌خواید بیاید بالاتر سهور باشید پس کی ای عبدالله در مرحله خود و خدا خود و خانواده خود و جامعه ببین چقدر امیان هواهای نفسانی تو رو وادار به حرکت میکنه و چقدر حبس نفس داری نسبت به این حالات حالا دقت بکنید من دیگه شام غریبانه شب خاصی با چشم دل دریم برای تسلیت به امام اصغر علیه السلام حالا این بحثای ریشه‌ای صبر و آیات و روایات و تحلیل و دیدی چند شبه گذشته یه مناسبتی اگر خدا خواست بحث است باز به اون پردازیم این نتیجه گیری اخلاقی رو وظیفه شرعین بودم شب بکنم اما حالا دقت کنید صبوران کربلا بی صبران واقعه کربلا تا به کجا رسندن چی شد و به کجامون؟ خب قضایه رو شنیدید تا به اونجا رسید که وجود مقدس عبی عبدالله علیه السلام رو به شهادت رسندن حالا من از اونجا به بعد تیک تیک آشو سعی میکنم انشاءالله بر خودم مسلط بشم بتونم یه مقداری بخونم و معنی کنم سلم ما قتله صلوات الله علیه وقتی که امام علیه السلام کشته شهید شد ارتفعت فی سما فی زال کلوخ غبرتون شدیده آن مظلمه یک گرت و شدیدی در فضا پیداش یک تاریکی و سیاهی در فضا فضا رو گرفت، فی هاری همراه یک باد سرخی وزید انگار این بادی که می وزید خون با خودش این بر و ور بر می برد که خود این باد قرمز بود لا ترافيا عين ولا اثر حتى ظن القوم ان لعذابه قد جاءهم فلب سو كذلك ساعتا ثم انجلت عنهم انقدر این گرد غبار شدید بود و این باد قرمز و این سیاهی و تاریکی که را گرفته بود حتی تا این که ظن القوم ان العذاب قد جاءهم مردم خیال کردن عذاب نازل شد الان الان که عذاب اینا رو بگیره طلبشو کذالک ساعه یه مقداری مکس کردن یه مختصری به این حالت من ثم جلث انهم سپس معف شد قضیه خاص یه چند لحظه ای این مسئله رو به مردم نشون بده ولی خواب حالا این مردمی که هوای نفس در درونشون زبانه میکشه این صحنه رو دیدن این همون صحنه که شما شنیدید در روزها حضرت زینب سلام الله ها اومدن خدمت امام سجاد آقا جون زمین میلرزه آسمان تاریک شده یک حالت خاصی فضا رو گرفته چیست این حالت ها که امام سجاد فرمودن امه جون دامن خیمه رو بالا بزن دامن خیمه رو بالا زدن دیدن که سر بریده یابی عبدالله رو بالای نیزه کردن اون لحظه خاصش که حضرت از پل زی برگشته بود تو خیمه بود حالا بحث شد. این صحنه رو دیدن زمین و زمان دگرگون شد آسمان تاریخ شد اما مگه عبرت میگیرن صبر همینجا پشیمون بشن برگردن سمه اقبلو سپس حمله بردن برای دزدیدن اون چیزایی که تو بدن حسین بود و تو خیام حسین بود آخه ببینی چقدر پستی چقدر این انسان میتونه رزل باشه و اخذ او اسحاق نه حوویه اسحاق ابن حوویه اومد پیراهن تن آقا رو کند با خودش پرد او پوشی. فصار عبرس به بیماری برای اسم مبتلا شد و قال از صادق علیه السلام امام صادق برای ما نقل کردن و اخذ سراویلهو اب جرد ابن کعب تیمی و روا انهو سار زمنن ما ادن من رجلی. این آقا اومد شلواری که به بدن آقا بود خارج کرد بعد از مدتی فلج شد و زمینگیر شد و اخذ امامته او مرسد ابن الغمه این امامی که آقا وقتی سرشون صبحون خوندم زخمی شد اون قلنصو بر و کنار گذاشتن یه پارچهی برداشتن دور سرشون بستن شمر این آمد برای جدا کردن سر حضرت این امامه رو کند انداخت کنار از این هم اومدن ورداشتن برن یعنی روحیه پست و زمینه زلت و عقارت در مردم ببینید تا چه میزانی بوده است و جا است. و اخذنا عليه الاسود بن خالد اسود بن خالد اومد نعلین آقا رو برداشت برد. و اخذ خاتم او بجدل ابن صليب الكتبي کلبی و قطع اسبه و مع الخاتم او اومد که انگشتر آقا رو ببره این انگشترو میخواست در بیاره یه مقدار وقت میگرفت، نکنه دیگران بیان صفقت بگیرن انگشت رو کرد که انگشتر رو بخواد ببره اخه ببینید بشر تا به کجا میتونه برسه برای انگشتر دست عبی عبدالله بدنی که سرش بریده است، بدنی که این مقدار مجروع جراعات داره یه انگشتر هم می از دست خارج کنه انگشتش رو میکنه می و اخذت غطيفه اللعو کانت من خذ قيس بن الاشعس. همه این جزئیات تاریخ عاشورا رو نوشتم یک قتیفه مثل مثلا رو اندازی که روشو نمیانداختم اینو حضرت اولی که میومد میدون روشونهش بوده تو جنگ افتاده اینم او اومده دل دیده برده که مثلا نوعی در این بین و وجاحت جاریه من ناحیه خیام الحسین یک کنیزکی از طرف خیمه های ابی عبدالله اومد جلو این که از کشتار امام حسین و دزدیدن وسائل خود امام حسین غافل شده بودن حالا میخواستن بیان به سمت خیمه ها شروع کنند، اول از گودال قتلگاه شروع کردند. این کنیزکی که جلو خیمه ایستاده بود فقال لها رجلون یکی از اون مردان به این زن گفت یا الله. ای کنیزک الهی آقای شما کشته شد قالت الجاریه اون کنیز میگه فاسرحت اله سیدتی من دویدم به طرف حضرت زینب و انا اسیح و من فریاد میزدم و تصاب بالقوم علانه به بیوت آل رسول جمعیت حجوم آوردن لشتری که اون همه ادهی که شنیده اید بودن حجوم آوردن برای خیام عبی عبدالله به جهت چی؟ الان نهده بیوت آل رسول و قررت این زهر البچول آیا ببینن چقدر میتونن از این امکاناتی که تو خیمعات ببرن حتی جعلوا ینزعونه ملحفة زهرها حتی یه ملحفهای که یک پوششی که روی یک خانمی بود اینم کشیدن با خودشون ببرن من ضمنی که دارم مصائب امشب رو میگم حالا به جاهای حساستری خواهد رسید دقت کنید اگر این ها حبس نفس نداشته باشند تا به چه پستی و ذلتی ممکنه کشیده بشن آخه شما فکرشو بکنید حالا کشید بعد میگیم اسبار و سمه تازه دادن به بدن تازندن از یک بدن با اون همه جراحات حتی به خاطر انگشتر انگشت رو میبرید که انگشتر رو بردرید از یه ای و قطیف هم نمیگذرید بعد این زن و بچه ای که این همه فشار و ستم رو دیدن میاد میریدید اینگونه عمل میکنید که یه پوشش رو از روی زن هم بکشید ببرید این چه به نام چی؟ نماز هم روزم پس صبر یک مرحله صبر مراحل دیگر اگه این انسان جلو هوای نفسشو نگیره این مسابقه میدادن که بدون بیان زودتر هر کدوم چیزه بگیرن و خرجنا بنات الرسول و حرمه یتساعتن علال بکا و یندبن لفراغ الحمات و بنات رسول دختران آل رسول اینها خارج شدن از خیمه ها یتساعتن علال صدای گریشون بالا رفته بود و ندبه ندوه میکردند فریاد می زدند ل فرات و نه اینکه صبر نداشتند میخوان بمانه در تاریخ ببینید پسی آب چه صورته رایت امراتن من بکر بن وائل كانت معزوجهها فی اصحاب عمر ابن سعد یه نتیجه اینجا از این قضیه میخوام بگیرم اول قضیهشو بشنوید از تاریخ بعد نتیجهشو برای ما خیلی سازنده است دقت بفرمایید یکی از لشکریان عمر سعد بکر ابن وائل زن بکر ابن وائل همراه بود تو لشکر عمر سعد بود وقتی این سحنه فلم ما رعت القوم قد اد تحمو علام نصاي فستاتهن نه وقتی این زندیت سپاه امرساد رفتن به طرف خیام ابی عبدالله یک همچون حرکتی رو انجام بدند و هم یسلبون آن و دارن میدوزدن از اینها حتی لباسهایشون را اخذت سیفن و ادبلد نعول فستاد یه شمشیر برداشت دوید به طرف خیمه های عبدالله فقالت یا آل بکرب نوائل وائل قبیله خودشو صدا زد ای هم قبیله های من اتسلب و بنات رسول الله لا حکم الا لله یا سارات رسول الله فعخذها زوجها و ردها رحله شمشیر میزد داد میزد دارن به خاندان رسالت جسارت میکنند. آی خانواده قبیله من بیاید امت بکنید شوهرش رفت زنش را از اون جمع جدا کرد آورد توی خبیله خودش نتیجه ای که اینجا میخوام بگیرم قبل از ادامه بحث دقت کنید هر کسی در هر جمعی در هر شرائطی با هر قومی بخواهد به طرف حق برود میتواند نیست وقتی مردانشون انچنان شرافت از آنها سلب شده. وقتی انقدر بیر غیرت شدهاند که بعد از همه اون صحنه کذایی روز آشورا حالا عصر آشورا با یه مشت زن و بچه دارن اینجوری برخورد میکنن یک زن شمشیر برمیداره پا میشه و میاد جلو خیام عبی عبدالله میسه یا سارات رسول میگه میگه برخیزید خونخواهی کنید با اینکه شوهرش جز سپاه عمر سعده خودشم در دل سپاه عمر سعده اون وقت جوان شما میتونی بگی دوستان ناباب داشتم متدین نشدم؟ خانون شما میتونی بگی پامیلای ما قوم و خیشای ما آدمای مذهبی نبودن من مذهبی نشدم فردای قیامت این زن میاد جلو شما رو میگیره میگه من در اون صحنه کذایی غروب آشورا نشون دادم انسان اگر بخواد میتواند کما این که در کوفم اینجوری شد این نقطه های زریفش رو بفرمایید فقط تمریل کنیم که صبور بشیم و از خودمون ایستادگی را نشون بدیم قام اخر ج نص منن سپس جمعیت ریختن خانوما رو اول از خیمه بیرون کردند. چرا؟ برای اینکه تو خیمه هرچه چه هست بتونن بگیرن و اشلوفی فیها النار نار آتشو های آتش رو توی این خیام برافوختن. برای اینکه اینها از خیمه ها بیان بیرون؟ زودتر خیمهها خالی بشه و اش نرف و نار، و خرجن هواسر، مسلبات، حافیات، باکیات ای خانم ها از خیمه ها خارج می شدن با دلی پر از حسرت غارت شده اموالشون رو بردن حافیات پا برهنه باکیات گریهکنان و عشق ریزان یمشین از سبای آفی حرکت می مثل اصرایی که دورشان گرفته بودند، با نیزه ها بعضی وقتا اینا را از این ور بر می بعضی وقتا اینا را از اون ور بر می تا ای خیمه ها را قارت کنند و به الله الا ما مررتم بلا على مصر الحسين اینجا رو دقت کنید ضمنی که اینا شو خیمه ها رو آتش زده بودند، با نیزمی اومدن زن و بچه رو اینور بر می می‌بردن اینا چی می گفتن؟ قل نه اینا می‌گفتن به حق شما رو به خدا که الا اظهار می‌کنید خدا شناس هستید الا ما مررتم بلا على مصر الحسین ما رو عبور بدید به اونجایی که بدن حسین در اونجا افتاده ما رو در این آل با امی نیزه بزنید ولی بذارید ما کنار گودال غفلگاه بریم فلمان نظرت نسبت و علال وقتی و خیزنا رو از خیمه ها بیرون کردن چشمهای های این آب قتلگاه افتاد نه و ذرت وجوههن و نه این می زدن و تو صورت آی خودشون می زدن و فریاد برمیآوردن قال فبله الله زینب بنت علی میگه به خدا قسم. من فراموش نمی کنم حالت زینب دختر علی را که او در میان این زنها چه حالتی داشت و هیات چند حسین و تنادا به صوت حزین و قلب نکاین زینب با صدای بلندی که حزین بود و پر از حزن و قلب نکایب و دل درد مندش می گفت وا محمدا صلی علیک مالک السما اول توجه به رسول خدا و محمد صلی علیک مالک السما ها حسینم مرمل بدما مقطع و وبناس ک سوایا یا رسول الله میخواد اشاره کنه به این همون حسین نیست که بغل می‌کردی می‌بوسیدی یا این همین حسین که روش شونهات می‌ذاشتی نوازش می‌کردی یا این همون حسین اینه. پیغمبر داشت جان میداد حسن و حسین وارد حجره شدن خودشون انداختن رو سینه پیغمبر امیر المؤمنین خواست اینا رو از رو سینه پیغمبر برداره پیغمبر اشاره کرد نه بذار رو سینه من باشه یه دست تو گردن حسن یه دست تو گردن حسین جان داد حالا زینب میخواد توجه بره سالله علیکم ملیک و سما سلام ملا آسمان بر رسول خدا آزا حسینون به این حسینی که اینجور آغشته یا به خون شده مقطع العذا بنا بدنش تکه تکه شده و بنا تو که سبایا دخترانت ببین چه گونه اسیر شدن الى الله المشتقى و الى المصطفى خدا به تو شکایت میکنم و به پیغمبرت شکایت میبرم و الى علی المرتضا و الى حمزه سید الشهدا و به کی شکایت میکنم از جهالت این مردم از توعش این مردم واه محمده حاضا حسینون بلعره این حسین توس اولین روز خانه غروب آشورا خود زینب کوراست که این روزه رو در کنار قتلگاه خونده مخاطبشم پیغمبر اسلامه واه محمده حاضا حسینون بلعره این حسین توس که تو بیابون افتاده یفری علیه السبا ببینید بادها چگونه خاکا رو میرید رو بدن حسیلت غتیل اولاد البغایا کشته نسل یا قیان و باقیان است یا حزنا یا کربا علیه ما تجدی رسول الله و مصیبتا امروز جد ما رسول خدا را کشتن قال صعب کلا والله كل عدو كل عدو و به خدا هر دوست دشمنی به گریه افتاد با این روز خانی زینب ثم ان سکینه زینب داشت روزه می جمعیت نظراشون جلب به زینب شده بود یه ادن مشغول قهارات خیمه ها بودن سکینه چار پنج ساله یا با شکید دوید رفت تو گودال قتلگاه سمه این سکینه ایتن اقدر جسد علی حسین علیه السلام این شب اومدن بدن بابا رو تو بغل گرفت تو گودال قتلگاه اونا چه کار کردن؟ فجتمه ادتون ملل عراق حتی جر رو یه ده از اون عراق با تازیانه اومدن این بچه رو از جسد باباش جدا کردن امشب کربلا رو در نظر بگیریم فا اقبله اعداء الله لعنهم الله حتی عهده و بالخیمه ای دشمنان خدا اومدن دور خیمه های ابی عبدالله رو گرد تا گرد محاصرش هردن ای دن رو بچه حالا تو خیمه و معهم شمر شمرم میانین بود فقال ادخلوا واسلبوا او برید داخل هرچی دارن از این آب بگیرید القوم دخل الغوم لاناهمم الله فأخز ما كان الغيم حتی افزو الى ب كان في عضون ع كلون. رفتن تو خیمه چی بود حتی گوشواره ای که تو گوشم و خلشم دختر زهرا بود این ام دختر زهراس مگه با سیلی گوشواره مادرش به زمین نیفتاد بین زنها و لشکریان مرد فریق که رو نکنن دواب و جنگ بود ای تو بی بابل کوتو ان فاطمه الصغرى گفت فاطمه الصغرى دختر امام حسین میگه كنت و حادثتُن به بابل خیمه من جلو در خیمه ایستاده بودم و انا انظر و الى ابي و اصحابي داشتم نگاه میکردم، اونایی که کربلا رفتن جای خیام را الان ساختن مشخصه با گودال دستنگا مشرف نزدیک میشدید من جلوی خیمه ایستاده بودم داشتم بابا و اصحابش رو می دیدم مجززین کلعدها علرمال مثل گوسفندایی که قربانی کردن سرشون بریدن بدن‌ها افتاده زمین این بدنای بسیاری که روی زمین بود نگاه می‌کردم ول خیول الا اجسادهم چجو و اصبا داشتن روی این بدنها هی می هی و بر می گشن. و انا و فکر و فی و علینا بعد عبیب بنی امیه و من داشتم فکر می که از بنی امیه بعد از این قضای ها با ما چه خواهم کرد ایت طلون او یسرون آیا اینا ما رو میکشن آیا الان میان ما رو اسیر میکنن فا به رجلن الان جواده دیدم یه فردی سوار بر شطور هست سوار بر اس بشه داره میاد یسوب و به کعب رومه با یه نیزه ای که رو اس سوار داره به این زنان میزند رئی بچه رو با نیزه به این طرف و آن یلوز نه بعضه به بعض و این زنان بعضی خودشون رو به اون بعضی می اون بعضی ها میان خودشون به این می و قد اخذ ما علیهن من اخمره و هر هرچی از وسائل تزینی و لباسی که اینا داشتن رو اینا را از اینها می گرفتن و هنه ی اینام اینا هم می زدن واجد دا و عبتا و علیه و قلت ناصره و اما من مجیرین یجیرونه آیا یکی پیدا نمیشه کمک من کنه اما من زایدن یزود و انا کسی نیست از ما حمایت کند فبینا اله علی هازه لحاله من در این حالت و ازن به هیقدر قصدنی دیدم اینی که سوار بر شطور فاطمه سوار بر اسب فاطمه سغرا دختر خودسال عبی عبدالله میگه من وقتی دیدم این باشه همین نیزه زنا رو میزنه این و رو بر میبره الان مثل که قصد منو داره و فررتون منحزمه من نگران و وحشت زده فرار کردم و انا از اون نا انه من خیال کردم که دیگه کاری به من نداره و به قد تبعنی دیدم داره دنبال من میاد یه دختر چند ساله میگه من دارم فرار میکنم او سوار بر اصل نیزه به دست دنبال من میاد و زهلت خشیتن منعو وحشد منو گرفت و ازن به کعب رمح بین کتبه از همون بالای است با نیزه چنان به من زد ف سقط و علا وجهی با صورت به زمین افتادم و خرم اوزنی و اخزه برتی گوشای منو پاره کرد گوشوارها را از گوش من کشید و برد با این حالت و من و ترکت ما تسیل و علا خدی خون به چهره من جاری شد و انا مغشی و علی من بیهوش شدم افتادم و اذا انا به امتی اندی تبکی شما رو به جان زینب اینجا رو دقت کنید مخصوصا خانمه ها دقت کنند میگه یه وقتی چشم با کردم دیدم امم بالا سر منه داره منو به میاره تا دقت کنید و ازا انا به امتی اندی تبکی دیدم امم بالا سر منه داره گریه میکنه فهیه چبور امه داره میگه قومی پاش و دخترم نمزی بریم با هم دیگه ما علم ما جراء البنات و اخی که الالیل نمیدونی با زن و بچه چه کردن با برادر بیمار چه کردن من پا شدم و قلت گفتم چی گفتم دقت کنی چی گفتم جلد بهار بحار قفه 61 رو دارم براتون میخونم دختر نیزه به کتبش ددن با صورت افتاده زمین گوشاشو پاره کردن گوشباره رو از گوشش کشیدن بیهوش شده تو بیابان افتاده امه تو بیابونا گشته تا بچه رو پیدا کرده حالا به آورده پاشو با هم بریم جای خیمه نیم سوختهی برپا شده زن و بچه رو تو این خیمه جمع کرده میگه تا بلم ش تا گفتم امه جان من خرق رو بها رأسی ان اعین النزار امهجان یه ای داری بندازم سرم نامهرما منو نمینم <تصفيق> <تصفيق> نمیدونم بقیه یشو بخونم یا نه یب نلستم عوض میپوام بقیه یشو گوش کنی ای دختر خورتار بگه امه جم. یه چیزی بده من بندازم سرم یا امتا هل من خرقه ازترو بارس یعنی عیون ندار فضالت امه گفت یا بنتا دختره کم و امتو کم نسلو <تصفيق> و رای تو راسه مخشوفه, امه. امه راسه مخشوفه. من دیده هم دیده مرازه مخشوفه و ماتنهو سده من ازداد دیده مامای سورته مخشوفه اینه دیگم به باقیم امشان حالا کرملا رو نذاشتید بخونم این دو کرملا هست اما سر و سره امشان کجا تو خانه خولیه خولی سره و زیلو برده آیوزه دره دنور گذار همه تو خونه خبی نصفش در زن خولی باشد نماز شب به خونه دید نوره میاد حسین هم کربلا میره گودان ازت بگم بدن بیزن رو میبینم کوب میام، سر بیزن رو میبینم زن خولی اومد دید نور از تنور بالا میره سر تنور رو سر حسین رو دید را پشت بام زنای شیعه بیاد حسین میباره